پدر بزرگ خوش به حالتان روستای شما بسیار زیباست اینجا در تابستان خیلی قشنگ است ولی در زمستان بسیار سرد است شما به قله سبلان رفته اید این قله چقدر زیباست وقتی جوان بودم با دوستانم یک بار به دریاچه رفتیم. دریاچه کجاست؟ کوه سبلان یک آتشفشان است. در قله آن یک دریاچه هست. خیلی عالی است. پس شما ورزشکار بودید؟ بله، من الان هم ورزش کنم. و به آب گرم شابیل می رو. شنیدم چند آب گرم در شهر سرین است. بله هم در سرین و هم در این روستا چند آب گرم هست. آب گرم شابیل خیلی دور نیست. خیلی توریست و مسافر در اینجا هست. اینها برای تفریح و کوهنوردی میآیند. بله. سبلان و آبگرم‌های اینجا خیلی معروف است. با هم به آبگرم هم بروید. حتما با سعید و علی به آبگرم می‌رویم.